بسم الله الرحمن الرحیم در درس قبلی توابع خان رو خاندیم بعد از مرفوعات اومده بود. یعنی مرفوعات رو که حفته بودم خوندیم رسیدیم الان به منصوبات اون کلماتی که ایرابشون منصوب هست منصوبات الاسما المنصوبات خمسة عشره منصوبات پانزده تا باشند و هیا عبارتند از المفعول به مفعول بهی مانند نصرتو تو زیدان والمصدر مصدر که همون منظور مفعول مطلق هست مانند نصرتو تو زیدان نصران نصران زمان مانند شمتو یوم الخميس ظرف المكان معناندي وقفت أمامك حال معناندي جاء زيدون راكبا تمييز معناندي رأيت أحد عشر كوكبا والمستثنى معناندي جاء القوم إلا زيدا واسم الله اسم لا نافية معناندي لا طالب علم مذموم منادا مندي يا عبد الله والمفقول من أجله مندي قمت إجلالا للأستاذ مفقول معه مندي جئت والبرد والكتابة و خبر کانه و اخواتها خبر کانه و اخواتش مانند کانه کان الله عزیزن اسم انه و اخواتها اسم انه و اخواتش مانند ان الله عزیزن و تابع للمنسوب اونی که طابع منصوب باشه که در بحث تابع مفصل خوندیم چارت هستند نعت مانند جا رئت رجلا راجلن کریمن مانند رت و زدن توکید مانند جا از زي رت نفسه بدل مانند رئ تو زدنک. اینها 15 تا از منصوبات بودند که هر یکی رو الان إن شاء الله مفصلا خواهیم خواند المفئول بهی باب المفئول به وهو الاسم المنصوب مفئول به اسم منصوب هست الذي يقع عليه الفيل كفيل برشواق مشي فتحت البابة فتح بر بابة انجام گرفته نصارتو زيدان اكرمتو سئيدان فيل روشن انجام گرفته واقع شدي نحو قول لوكا ضربتو زيدان زرم تو من انجامش دادم زیدن ضرب زید واقع شده رکب تو الفرسه. پس سه شا... تا مسئله در مفعول بهی جمع میشه اسم هست دو منصوب هست مرخو... مجرور نمیتونه باشه فعل و حرق نمیتونه باشه و سوم اینی که فعل فایل برش واقع میشه و انواعی داریم و هو قسمان بر دو قسم هست ظاهر و مضمر یک ظاهر دو مظمر که همون زمیر هست ظاهر ماننده امثلهی که ذکر شد فالظاهر ما تقدم دیکن ظاهر آنچه که ذکرش را شد والمظمر قسمانه زمیر بردونو هست متصل و منفصل زمیر متصل و منفصل یعنی زمیر متصل هم میتونه مفهول بهی بشه؟ هم منفصل فالمتصل 12 متصل ها 12 تا هستند 14 تا بدون تكرار 12 تا هستند و هيا روزك فعل اینا روزه که چون ندارن ضربني ضربنا ضربك بنا ضربكما بک دار بکی ضربها ضربهما دار بکم دار بکنا معمولا حفظ نه آورده یعنی اول متکلم ها رو آورده چون معرفی ترند بعدش مخاطب ها رو بعدش غایب ها رو. اگر بر برتبق معمولی که معمولاً در مناطق اون من حفظ کنند از غایب بیاین بعدن حاضر بعدن متکلم میشه. زر ب بهو به هما زر به هم زر به ها زر به هما زر به کن ن زر به ک زر به کی زر به کم زر به کن ن نی زر به نا. این زمایر زمایر متصل با فعل که به چسبند مفعول به هستند سد در صد. اما اگر به اسم یا به حرف جرب چسبند موقع مجروری هستند و اعراب دیگه دارند والمنفصل اثو عشر منفصل ايا ايا هم که به کلمه نچسبیدن دوازه تا سنم چونی ایایا یا لا ایاکا ایاکی یاکما ایا کم ایاهو ایاها ایاهما ایاهم ایا اگر با اون ترتیب بگیم ایا هو ایا هما ایا هم ایا ها ایا هما ایا هن ایا اياك که ایا کما ایا کم ایا کی ایا اياك ایا کن یا یا نه اینا هم مفعول بهی واقع می پس مفعول بهی یا اسم ظاهر است مثل امسلعی که بیان شد بحث خیلی ساده است یا زمیر هست زمیر رو به هر گفت ما نمیخواهیم بحث طولانی بشه، بریم مستقیم بحث بعدی حالا اگر میخوایم یه ترکیبی در مورد داشته باشیم نصر تو که نصر تو فعل با فائل که مفعول بهی نصر تو کم همچونین ایا که نعبدو ایا که مفعول بهی نعبدو فعل با فائلش که مستتر و است. بحثیست ساده فعل, فعل فعل بر چیزی که واقع میشه بش میگن اونو مفعول بهی دومین منصوب المصدر هست هو الاسم المنصوب اسم منصوبی هست الذي یجی ارثالتن فی تصریف الفعل که در تصریف فعل در رتبه سوم میاد چون اول مازی رو میگند بعدش مزاره رو بعد مصدر رو معمولا در کتب صرفی چونیده به خاطر زرب یعزربو زربن نصر ین سرو نصرا اکرم یکرم اکراما کرم یکرم تکریما نصرا زربن اکراما تکریما اینا همیشون مصدر هستند ولی خود مصدر آی منصوب هست یا مفعول مطلق آنچه که جز منصوبات هست مفعول مطلق هست که اکثرا مصدر هست به خاطر این بهش گفته مصدر رابطه بین مصدر و مفعول مطلق عموم و خشوص منواج است. دونید مصدر مفعول مطلق واقع میشه و دیگاه مغشون مینید مصدری وجود داره که مفعول مطلق نیست مانند اعجبنی فهمک اینجا فهم مصدر هست ولی مفعول مطلق نیست فائله یا مفعول مطلق هست ولی مصدر نیست مانند زراب تو که سوطن صوت مصدر نیست آله زرب هست وگاه موقع هم مصدره و هم مفعول مطلق مانند در نصر تو که نصره. نصر مصدر و مفعول مطلق لذا اونی که جز منصوباته اون همین مفعول مطلق هست و هو قسمه این مفعول مطلق يا مصدر بردنو هست لفظي ومعنوي لفظي ومعنوي فإن وافق لفظه لفظ فعله فهو لفظي أجر لفظي مصدر با لفظي فالش يكي بود معده وريشش يكي بود بش مغان لفظي ما نند قتلته قتلان تأكلون المال أكلا جمع خوب أجر لفظش با لفظ فعل یکی بود اون موقع میگند لفظی مصدر لفظی و الوافق معنا فعلی بدون لفظه فهو معنوی اما اگر معنای مصدر با معنای فعل یکی بود ولی مادهشون یکی نبود لفظشون یکی نبود اون موقع میگن معنوی مانند جلس تو قعودن جلس تو جلسه و قعودا معنی شون ولی لفظ شون یکی نیست اگر اومده بود جلس تو جلوسن اون موقع میشد لفظی قعد تو قعودا میشد لفظی ولی اگر بگیم جلس تو یا قعد تو اون موقع میشه معنوی قم تو که معنا یکیست استادم استادنی الو تیگه این معنی خیلی سادهی هست یعنی به تأکید که استادم این تأکید میکنه مفعول مطلب. خیلی از مترجمین تونین ترجم... ترجمش میکنند ولی واقعیت تونین حس که در معنا باید بیشتر دقت شود و تاکلون التراث اکلا لما این هم لفظی هست و تاکلون التراث اکلا لما و تحبون المال حبا جمع این هم لفظی هست حبا پس اینجا مفهول مطلق است به خاطر این منصوبه کلا اذا دکت الاردو دکن باز هم لفظی است و ما اشبه هذالک الاخر این بساله مفهول مطلق بس بسیار ساده اگر کتاب ها رو بیان کنیم و از زاویعی دیگر بر سنو هست از زاویه دیگر بر سنو هست یا عاملش رو تأکید میکنه مانند نصر تو زید نصره یا نوع عامل رو بیان میکنه مانند تأکلون التراث اکل اللمه انا فتحنا لك فتحا مبینا فتحنا نوعش رو مفعول مطلق بیان میکنه فتحا مبینا یا اینکه عددو بیان میکنه مانند ضربت این از زاویه دیگر بود بحثیست بسیار ساده اگر بخوایم ترکیمش کنیم تاکلونه میشه تأکلون فعل مزاره مرفو چون ناصب و جازم سرش نو علامت رفش نون فاعلش هم واض الترافه مفعول بهی منصوب بافته اکلا مفعول مطلق لمن هم صفت اکلا هست به سادگی میریم منصوب بعدی ظرف زمان ظرف زمان و ظرف مکان اول میاد ظرف زمان رو توضیح میده ظرف و زمانی هو اسم الزمان زمان ظرف زمان میگه اسم زمان هست المنصوب به تقدیر فی منصوب هست با تقدیر فی نحو مانند کلمات اسمهایی رو که ظرف زمان هستن سال زده اليوم اللیله و غدوتن و بکرتن و سحرن و غدن و عتمتن و و و و و اینجا سیزده لفظ رو که دلالت بر زمان میکنن ناورده است و اشباه اینها البته اینو باید بدونیم که زمان بر دو بردونه هست یا مختص هست یا مبهم هست منظور از مختص اونی که مقدارش معین باشه زمانش محدود باشه ماننده ماه سال روز هفته مبهم که وقتش مشخص و محدود و, محدود و معین نباشه ماننده لحظه وقت زمان هین. سافر تو زمانا حینا اما اگه بگیم صمتو یوم الخمیص این دیگه میشه مبهم در ظرف زمان چه مبهم باشه چه مختص با تقدیر فی به عنوان مفعول فی منصوب هست زمانی که به تقدیر فی باشد یعنی سمت یا یوم الخميس من این روزه گرفتم در روز خمیس مقصد خود یوم نباشد ذات یوم نباشد بلکه کار درش انجام گرفته باشد خب بعدش میاد کلمات زیادی رو آورده ما برای یکی از اینا مثال زدیم یکی رو تحکیم میکنیم سمتو یام الخمیس سمتو فعل با فائل یا مفعول فی یا همون ظرف زمان الخمیس هم میشه مضافون اله سمت شهرا، صمتو سمت و فیل بفایل زمان میشه بعدش میاد ظرف مکان و ظرف المکان هو اسم المکان المنصوب بتقطیفی ظرف زمان هم اسم مکان هست منصوب هست با تقدیر فی مانند امام، خلف، قدام، ورا، فوق، تحت، اند، ازا، حضا، تلقا، ثمه و هنا البته اینا همیشون مبهم بودن یعنی مشخص محدود نبود مکانشون چون این اسم ظرف مکان هم دوباره بر بردونه هست مختص و مبهم یا محدود و مبهم مختص اونیه که حدودش مشخص باشه مانند دار مسجد حدیقه بستان و مبهم اون هست که حدودش محصور و مشخص نباشه مانند ورا و امام که اونی که به عنوان مفعول فیه منصوب میشه اونیکه که به انوان زرف منصوب میشه مبهم هست بخاطرین این فقط مثاله مبهم آورده بود ولی مختص با حرف جر مجرور میشه مانند رعی تو زیدن فی المسجدی المسجد که مختص هست این نقطه رو بدونید پس در میان ظرف زمان و مکان ستاشون با تقدیر فی منصوب هستن ظرف زمان مختص و مبهم و ظرف مکان مبهم مختص مکان مختص بافي لفظاً مجرور مشه والحال منسوب بعدي حال هو الاسم المنصوب اسم منصوب هست المفسرو لمن بهم من الهيات تفسير میکنه هيات مبهمرو هيات مستورو پوشيدرا نحن قولك منند جاء زيدون راكباً اومد حالتش رو داره بیان حالت زید رو راکبا سواره رکبتو الفرس مصرجن سواره از شدم با سرجش لقیتو عبدالله راکبن دیدم عبدالله رو سواره پس الوته حال فقط اینجا تمام این مساله که آورده بود با فعل آورده بود یعنی رکبتو لقیتو جاء. شبه فعل هم حال رو منصوب میگردانه مانند اسم فائل مصدر غرف اسم اشاره مانند ها زیدون راکبند جما فعلی نداریم ولی راکبند حال است و منصوب پس منصوب جز حال جز منصوبات هست و با مختصر مسائلی که بیان کردیم حال یا حالت فائل رو بیان میکنه مانند جا از زیدون راکبت یا مفعول بهی رو مانند رعی تو با واحکت زید رو دیدم در حالی که میخندید یا حال خبر رو بیان میکنه مانند انتصادیقی مخلصن یعنی تو دوست من هستی در حالی که مخلص هستی. یا حالت مجروری رو بیان میکنه مانند مرر تو بهندن راکبتن. یا حالت مجروری رو بیان میکنه که مضافن اله هست ان تبع ملت ابراهیم ملته ابراهیم ابراهیم رو بیان میکنه ولی ابراهیم هم اله هست چون ملته مضاف هست و مجرور هست حال مجرور چه با حرف جر مجرور شده باشه، چه با مضافن اله واقع شده باشه در هر دو حالت میتونه حال داشته باشه. این نکته رو ذکر کردیم ولی یک سری شروطی حال و صاحب حال داره. ولا لا یکونو الا نکرتن. میگه و حال نمی باشد مگر نکره. یعنی در حال واجب است که نکره باشه جائز نیست معرفه باشه اگر هم جایی اومده بود که معرف بود ظاهرا واجبه که تعویلش کنیم اون معرفه رو به نکره مثلا مثالی رو میارن جا زید وحده زید اومد وحده اینجا وحده نکره نیست چون مضاف به زمیره اونی که مضافه به زمیر باشه معرفه هست اینو میان تعویل میکنیم چون اینکه جا از ایدون منفردن پس اگر جایی ظاهرا هم معرفه بود تعویل میشه ولا یکون إلا بعد تمام الكلام و حال نمیاد مگر بعد از کامل بودنه کلام یعنی اگر فعل بود بعد از فائلش میاد چون فعل با فائلش کامل میشه و اگر مبتدا بود بعد از خبرش حال میاد پس بعد از اتمام کلام یا بعد از استیفای کلام میاد حال بعد از اینکه فعل فاعلش اومد بعد اینکه مبتدا خبرش اومد ولی این نقطه رو بدونیم که گاهی موقع واجب هست حال قبل از تمام ارکان و اجزای جمله بیاد ماننده کیفه قدیم علی این مثالی است که صاحب تحفه سنیا آورده است خب کیفه حال حالت هست حالت علی رو بیان میکنه ولی چون از اسم استفهامه و اسم استفهام رو نمیشه در آخر آورد باید صدر کلام بیاد ناچاریم پس در ابتداش بیاریم لذا کیف با وجود این که حال هست محلن منصوب هست میبینیم که بعد از تمام کلام نمونده که هیچ بلکه در صدر کلام اومده ولا یکون صاحبها الا معرفه و ذل نمیتونه باشه جز معرفه یعنی ذلحال همشه معرفه باشه مگر اینکه مصافغ و مجوزی داشته باشه یعنی نکره تخصیص شده باشه در بحث مبتدا هم اینو خوندیم که مبتدا نمیتونه نکره باشه مگر اینکه تخصیص شده باشه یعنی صفت داشته باشه یا مضاف واقع شده باشه یا اینکه مجوز دیگه‌ای که میتونه میتونه هميني كي رو رو درقات برد درقات برد حال نکره باشه همینی که قبل از حال اومده باشه. خودش مثالی رو در قطون دا آورده در کتابه دیگه صاحب توف تون هم آارده لمیت تا مو طاللو یلو رو که حال خللو. موشان حال طلو هست طل رو حالتش رو بیان میکنه که چقدر وحشتناک هستند میبینیم که طل نکره هست زل حاله زل حاله ولی نکره هست. میگیم اینجا یک مجوزی وجود داشته اون مجوز اینه که حال قبلش اومده یا اینکه نکره باشه ولی خاص شده باشه حالا چه با اینکه مضاف شده باشه یا وصف شده باشه مضاف ماننده فی اربعت ایامن سوان اربعتی ایام سواا اربعتی سواا حال از اربعتی هست ببینیم که اربعه نکره هست چرا تونسه پس اینجا زلحال نکره باشیم میگیم چون تخصیص شده مضاف به ایام هست اربعه تی ایام سوان فسوان حال است زلحالش نکره هست, هست مجاوزی اومده اون مجاوزینی که تخصیص شده مضاف شده یا این که صفتی براش بیاد مانند مثالی رو صاحب کتاب سنیه آورده است. نجیت یاربی نوحن وستچبت له فی فولکن ماخرن فی الیمی مشهونن, مشهونن, مشهونن حالت فلوکو دار میگن میکنه کشتی رو فلوکن ماخرین چرا اینجا فلوک ذل حال حالتش بیان شده ولی نکره است چون میگیم براش صفتی اومده فلوکن ماخرین پس ولا يكون صاحبه الا معرفه نمیتونه ذل حال اینکه کنه معرفه باشه بعدو گفتیم البته یک سری مسوق ها یا مجوز ها میاند که ذلحال میتونه نکره باشه که بیانشون کردیم میریم روی منصوب بعدی از التمیز. التمیز هو الاسم المنصوب اسم منصوب هر از المفسر لمن بهم من الذوات تفسیر میکنه ابهام زوات رو مفرد ها رو نحو قالک تسبب زید ارقا زید عرق ریخت تفقا بکر شحما طاب محمد نفسن نفس محمد خوش شد 20 کتابا ملكت زيد منك زيد منك وجهن. اینا چندین مثال بودند که اینا رو آورده بود عرقا شحما نفسا کتابن، نعجتا ابا وجا اینا تمیز هستند ولی این تمییزا با هم دیگه فرق دارند تمیز یا رفع به از ذات میکنه یا از نسب ذات همون مفرد هست و نسب همون جمله هست پس رفع ابهام یا از ذات میکنه یا از نسب که همون مفردش نسبت هست مانند ذات مانند اینی تو احد عشر کوکبه در قرآن و بده تمیز هست از 11 رفع ابحام کرده دیدم 11 خب اینجا ابحام موجوده 11 چی؟ کوکب چیز دیگه چیز دیگه چی چیزی؟ بعدا با کوکب میاد این ابحامه رو رفع میکنه اشترای تو منوین قمحن کل باشه وزن باشه مقدار باشه مساحت باشه این از مفرد هست اما تمیز نسبت هم که از جمله هست از کل جمله رفعه ابهام میکنه خودش بر دو است محول و غیر محول محول یعنی اونی است که جمله تغییر کرده اصلش چیز دیگه ای بوده مثلا موقعی که میگیم وفجرنا الارض عیونان اصلش چونین بوده وفجرنا عیون الارض که مضاف حذف شده مضاف الیه اومده روش ایرابش رو گرفته بعدن مضاف رو به عنوان تمیز در آخر شاوردی شده فجرنا اویون الارض اصلشه ولی شده فجرنا الارض اویونن این شد محول از مفعول محول از فائل هم مثالی زده است تفقع زیدون شحمن اصلش چنین هست تفقع شحم و زید که شم که مضاف هست حس شده زید مضافن ایله اومده سر جاش اعرابش رو هم گرفته شحمن رو بعدا به عنوان تمیز در آخر آردیم تفقع زیدون شحم چون این هست؟ این محول از چه هست؟ این محول از فائل هست تفقع شحم زید یعنی فائل تبدیل به تمیز شده در این مثال شحم فائل بوده در اصد که حفظ شده و اومده تمیز شده تفقع از زیدون شخمان اصلش بوده تفقع شخموزه یا محول از مفعول بهی که در مثالی که قبلا زدیم توضیح دادیم فجرنا نل ارز که ایون مفعوله ولی حس شده و ادان اومده تمیز شده فجرنا الارضه ایونال از مبتدا هم داریم انا اکثر من که در از بوده مالی اکثر من مالک مالی مال که حس شده زمیر یا مونده اون متصل بوده و نمیتونه متصل تنها بدون بایی با کلمه باشه ناچاریم سر جشد زمیری دیگه بیارم که ببعناش هست انا اکثر من که مالن پس مالن هم تمیز هست و تمیز نسبت داریم که غیر محول هست یعنی اصلش منجوری هست مانند امتل الانا پر شد زرف ما ان امتل او لبنن ها؟ اگر ام این ماهن یا لبنانویاریم ابحام وجود داره از چه پر شد اینا اومده و رفع ابهام کرده ولا لا یکونو الا نکرتن و نمی باشد اسم یکونو هو هست که به تمیز برمیگرده و نمی باشد تمیز الا نکرتن جز نکره جایز نیست که تمیز معرفه باشه جالب اینه که استاد بزرگ وارم محمد محی الدين عبد الحميد مثالی رو آورده در این شرح که میدیم اصلا نهاد درصد توضیحات از برگرفته از این کتاب هستند. چون خیلی توضیح مختصری است ما هم خیلی مختصرن داریم توضیح میدیم. به خاطر اینکه طلبا ابتدایی های ابتدایی به فهمن رئیت کلمه آن عرفت وجوهنا صدات و طبتن نفسه اینجا تبته ان نفسه تمیز هست ولی میبینو الفلام داره میگه این الفلام الفلامی نیست که نفسه رو معرفه گردنده و زائد هست لذا ولا یکونو الا نکرتن تمیز میشه نکره هست ولا یکونو الا بعد تمام کلام و همیشه بعد از اتمام کلام میاد یعنی بعد از اینکه فعل فائلش رو داشت در آخر میاد بعد از اینکه مبتدا خبرش رو داشت اینها تا اینجا اکتفا میکنیم در این درس منصوباتی بودند که تا اینجای کار توضیحشون دادیم انشالله بقیه منصوبات رو در درس بعدی و نجروات رو در درس بعدی خواهیم گفت موفق و پیروز باشید